والرسول المفتت الذي ثوب احمد فصلىرتين باب القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمه ابن عم الله الكبرى النبأ العظيم النجم الصاغب اسد الله القالب قالب لكل قالب ومطلوب لكل طالب نقطة دائره المطالب امام المشارق والمغارب الذي هبه فرد على الهاذر والقائب مذهر الأجائب المج... ومذهر القرائب مولانا ومولى الكونين أب الحسنين المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى قرة الرسول حجة الله على الهجج ولية الله العزما اسمة الله الكبرا مثادات النجباء والنقبا فاتمة الزهرا و آل <سؤال> سبت الاكبر با محمد حسن ابن علي المشتبا و ساكن صادقنشربلا ذبيح بالغفا منته الرجاي حسين ابن علي سجد الشهداء و علي ابن الحسين دین و ومحمد ابن علي الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسى ابن جعفر القاضم و علي ابن موسى الرجل المرتزا و محمد ابن علي الجواد و علي ابن محمد الهادي و الحسن ابن علي الأشكري و صلوات الله على وتت الله وبقيته الله روحي ارباح العالمين لتراب مقتم الفدا واللعن الدائم لا ادائهم سيم الاول والثاني و والثاني والثالث والرابع و يزيد خامسا و عبيد الله ابن زياد بن مرجانه و عمر ابن سعد و شمر و آل ابي سفيان و آل زياد و آل مروان الى يوم القيامه جهت سلامتی و تحجیل در فرج موفور و سرور رضا طبقیت الله لازم سلواتی ختم بفرمایید دوم سلوات رو جهت شادی ارواح طیبه شهدا شهدای کربلا و گدشتکاند محبین امیرالمومنین المومین انوات گدشتکاند این سی یو ما پدر بنده حقیر ختم بفرمایید. چه بفار سفوم صلوات رو جهت شادی قلب نازنین بی بی ما شاهزاده حضرت رقیه بنت الحسین صلی الله علیه ما ختم فرمایید اللهم هفته پیش که در خدمتتون بودیم شروع کردیم راجب خطبه حمام یا خطبه متقین صحبت کردن و اومدیم گفتیم که این حمام شخصی بود مصاحب امیرالمؤمنین از اصحاب امیرالمؤمنین اومد به حضرت علی علیه السلام ارز کرد که آقا جان سفلی المتقین این متقین رو برمان شرح بده حضرتم فرمود اتقل لا به احسن قبول نکرد باقا بیشتر بگو و ارس کردیم که این همه گفتیم اون چجور آدمی بود رجلا آبدا، اهل عبادت بود بعد اومدیم یه روایت از عبادت و شهر دادیم که این هممامی که اومد اونجا با امیر صحبت کرد آدم معمولی نبوده مثل من آدم کوچه بزرگی باشه بلندش برخواد با امیر المومنین نه لبه بگه یه چیزی نه، اهل عبادت بوده و عرض کردیم این اصراری که به امیر المومنین کرد این که فرمود نه بیشتر بگو موجب شد اهل فرم نشه یعنی اگر کسی میخواد به مقامات عالیه ولایت کلیه برسه به در خونه اهل بیت برسه بیشتر از اون که بخواد میره میبینه که اونا چی میخوان حالا خود اهل بیت میفهمون نمک سفرتونم از ما بخواید اما اهل معرفت اون کسیه که بره در خونه اهل بیت بره حرم مامرزا بگه یا مامرزا من اومدم این سری زیارت شما یه دونه از چیزهایی که شما از من خواستی رو من اجابت کنم من اومدم اجابت کنم چی خواسته مولاد؟ زیاده خیلی هم زیاد نیسته. اون چیزهایی که ما الان میریم تو حرم از حضرت میخوایی در صورت انجام دادن همون چیزایی که حضرت از ما میخواد حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی میفرماید که العبودیه جوهرتون کنها هر ربوبیه. یعنی تو بنده باش. بنده باش. اونی که امام رضا گفته. اونی که امام حسین گفته. اونی که حضرت امیر گفته انجام بده. عبد باش. به کجا میرسی؟ این عبادته یه جوهره یه ذاتیه ذاتیه خودش ذات داره که کنهش ربوبیته موجب میشه تو خلیفت الله ارز بشی اصلا دنیا تو دستت باشه خیلی همه خلایق رو خدا میگه من تسخیر شما کردم این راهش عبودیته واسه چیه امام رضا میگه آقا این کار انجام بده واسه بابات مثلا بهت میگه آقا درس بخون واسه چی درس نمیخونی واسه اینکه تو سر تو دکتر بشی تو مهندس بشی میدونه تو این دکتری و مهندسی تو بالاخره چی دی برات برای همین اهل بیت میگه آقا نماز اینجوری بخون دل تو بده به ما چرا چون اگه دل تو بدی به اونا اعمالی که اونا گفتن انجام بدی میرسی به قله معرفت و انسانیت اون موقع این میری هر هم آمبرزا یا ممرزا یه بنسین به ما بده یه خونه ای به ما بده اینا مشورت شودد با نمیگم اینا نخواد بخواید باید هم از اونا فقط بخواید حالا که میخوای حداقل عد از ممرضا بخو. حداقل اینش که هست حالا اگه یه وقتی رسیدی به اون که داری اجابت میکنی دیگه ف حالا نمیتونیم همری که جای جواب کنی ولی دونه دونه که میتونی رهران نیش که تند و گهی خسته روه امروز صبح بلند شی آخ من دیگه میخوام همه نمازام اول وقت بخونم روزی هم هزار رکعت نماز بخونم بعدم روزه بگیرم افطارمم بادوم ترح باشه با نون جو بدون نمک سحرم یه دونه خرما بخورم و ریاضت بکشم خلاصه دیگه بس سه روز چپ میکنه کلا رهران نیست که گهتوند و گهی خسته روید. خسته هم نباید بریم. حال نداریم نماز بریم. با... بلکن بابا حالا چی میخواد نافله؟ از دلو در امام دو سلام بدیم بریم دیگه. حالا کی میره تو بوجو بگیره. خسته هم نباش. آم است که آهستو پیوسته روید. شروع کن. به آقا من؟ می‌خوام چیکار کنم؟ حالا نماز نمی‌خونم. شما حالا مسئله میام شما هم الحمدلله همتون می‌خونید. نماز نمیخوندم میخوام شروع کنم نماز بخونم. نماز میخوندم توجه نداشتم اول وقت بود، آخر وقت بود. اول وقت میخوام بخونم. اول وقت می‌خوندم، نافله نمی‌خوندم. حالا میخوام نافله بخونم. نافله می‌خونم. ولی بعد نماز همشین که میگهتم از سلام علیکم و رحمت الله و برکاته انگار رو میخ نیشستم میپریدم میرفتم میشینم یه ذره تغییبات میخونم عبادت رو براتون سهل میکنه خدا به شرط که شما یه قدم برید جلو باید مداومت بر این قضیه داشته باشید اکسیر اعظم تو طریق الله مداومت نگه امروز کار رو انجام بده حالا و ولش کنی هیچی نمیشه هیچی چی نمیشی بولنشو ور بشکار رزمی یه ماه تمرین کن تو اون یه ماه اس بروسلی به دست میده فهم میکنه همه رو میتونه بزنه یه کمر بندی دو تا کمر بندی سه تا کمر بندی میگیری اما چی میشه استاد اونی که 10 سال تمرین میکنه 20 سال تمرین می‌کنی میشه استاد. باید تمرین کنی، تمرینش هم مداومه. حالا مثلا مداومتش چجوریه؟ مثلا یه هفته هر روز تو صبح و شب نمیره بعد مثلا یه هفته نره، هفته دو جلسه میره تمرین میکنه آقا من شنبه میرم، سه شنبه هم میرم تمرین. ده سال همین مداومت میشه استاد. حالا ما توش کار میکنیم بلند میشیم یه ماه صبح می‌ریم، ظهر می‌ریم، شب می‌ریم. مثلا میخوام تو باشگاه بخوابیم. یه ماه میریم تمرین میکنیم بعد میگیم یا از تو اومد دیگه نمیری هیچ چی نمیشی عبادت همین مدلیه عبادت دوام و تداوم در عبادتی که موجب اثر میشه حالا میرسیم سر گفته مولا امیرالمومنین به حمام فرمود که یا حمام اتق این تقوا از چی میاد اونایی که عربی خوندن حالا شو دانشگاه چه توی مدرسه میگه نونه وقایه درسته برذر در زمیری میاد یا برثر فعلی میاد که میخواد بهش زمیر متکلمه وحده بیاد یه نونی میاد اصلا باستان جاعنی نمیگیم جایی که میگه جاعنی این نونه رو بهش میگن چی نونه وقایه یا وقایه برای چی؟ برای اینکه میپوشونه از اینکه که فعل در خطا باشه ما بدونیم که یهی که در اینجاست مال چیه؟ زمیره نه صفت، نه بدل، حالا نه دیگه عربی اما اصلش مال کجاست؟ مال اونجاست که عرب توی جنگ مثلا دو نفر با هم دوام میکردن، جنگ میکردن بعد اونی که پیروز میشد میگفتن فلانون، تقا فلانن. این که پیروز شد خودش را در مقابل اون یکی حفظ کرد تقوی یعنی همین حالا این تقوا توی این کلام عرب اومد توی علم شریف اخلاق که چی؟ کسی که خودش رو از گناه حفظ کنه آقا این تقوا خیلی معنای پیچیده ای داره همه جا هم میشنمید قرآن واکن توی یه صفحه تقریبا هر جایی وام میکنیم یا آقا اتقل الله اتقل الله تقوای خدا بشو کن تقوای خدا بشو کن و من یتق الا یجعل له مخرجا اصلا کسی که براش خدا راه خروج قرار میده بمبست نداره چرا من تو تو زندگی بمبست در یا گیر میکنی وای خدا من چیکار کنم گیر کرده واسه اینکه من و تو تقوا نداریم و من یتق الا و له مخرجا و اگر قوم من حیصلا یحثس اصلا کسی که تقوا پیش می کنه هیچ وقت گیر نمی کنه. سوره بقره الف لام میم ذالکل کتاب الراهبه فیه هدانا للمتقین. قرآن می آ این همه میگن قرآن آقا خب چرا من چیزی نمیشم؟ ولی این که قرآن میگه ذالکل کتابه هدانا للمتقین هدایت میکنه ولی نه تو رو، اونی که تقوا داره. تقوای که راه روا میکنه شما تقوه پیشه کن اون موقع میفهمی 17 در کت نماز یعنی چی اون موقع میفهمی سلاط مو... فل... مر... المعراج نماز مومه معراجشه الان با چی نمیفهمی باشی تقوه نداری ذکر میگی یه چرا اصلای نگره تقوه نداری آقا من خیلی ساده یک مقوله خیلی پیچیده رو میخوام به دلان توضیح بدم جویده شده الان میخوام بدارم تو دهنت این قضا رو خیلی راحت میخوام بهت بگم مثالش رو برات میزنم الان سوار ماشینت میشی یا علی میخوای بری کجا میخوای مثلا بری چه میدونم یه حیعتی میخوای بری ارگ محرمزون نزدیک دیگه شب میخوایی بریم ارگ بریم مناجات سوار ماشین میشی یه با که ای بابا ترافیکی شد این یادگار امام ته یادگار حالی تصادف شده دیگه تا اینجا الان ترافیکه شما نیم کلاش نیم کلاش نیم کلاش یه متر یه متر دو متر دو متر میری جلو بعد ترمز میکنی دوباره میری ترماز میکنی تا ته یادگار امام هزار تا دو هزار تا ترماز میگیری اون آخر آخرش که میخوای به پیشی یه ترماز چی میشه؟ تصادف میکنی درسته این ترمزهایی که در مسیر اتوبان بود اینها تقواست در یک مسیر آروم این مسیر آروم کجاست زندگی من شما داریم زندگی میکنیم میریم میاییم تو خیابون حرف میدانیم با رفقا تو خیابون را میریم نامحرم هست میاییم خونه حرف میزنیم میاییم معمولی درس میکنی میری حییت روال معمولیت هر جا به تو گناه رسیدی اگه ترمز کردی بدنه یه ماشین تو سالم نگه میداری یعنی چی؟ یعنی روح تو رو سالم نگه میداری اما اگه یه دونه ترمز نکردی این ماشین کسی چهل روز گناه نکنه خیلی مردتر از اونیه که چهل روز بره چل تا چله بشینه آه؟ سلامتی امام زمان خط ما چهل روز گناه نکردن امیر المومنی فرمود روی فدا گناه نکردن آسونتر از توبه کردنه فکر نکن الان بولا میشه می گناه میکنی بعد هم توبه میکنم دیگه اونایی که اومدن امام حسین رو کشتن گفتن میریم حسین رو میکشیم ری رو میگیریم توبه میکنیم میدونستن دارن فبت پیغمبر میکشن میدونستن دارن کبیر انجام ولی گفتن راه توبه بازه ولی نتونستن توبه کنن فکر نکن توبه کردن راحت. خیلی سخته توبه این لغلقه زبان نیست میگه صبح برکف صاحب میگه صبح برکف این تسبیش دو دستشه صبح برکف توبه بلدف استخفال بارد استخفال بارد صبح برکف توبه بلدف دل پر از شوق گناه محصیت را خنده می آید ما زیک میگی اما دلت یه جای دیگه است؟ لغلهغه زبان توبه میکنی اما دلت با گناه. دلت با کیه از اونایی نبوشه، نباشی که و فی قلوبهم اقفال ها بزنن، به قلبت قفل نزنن و اگه قفل به قلبت بخوره بیچاره میشی یا؟ قلب قلبت سالم میمونه تو تقوا. دیدی این ماشین رفت رسون خودش رو تو هم میخوای خواهی تو برسونی ترمز کن حالا چرا گفتم یه اوتوبانه ترافیک؟ برای این که بهت بگم که این تغوا در مسیر معمول زندگی ما قرار داره نه در اتفاقهای خاص داری 120 تو تتوبانی کرز میری یه او یه حیوانی میپره وسط چجور ترمزی می‌باید بزنی اگه ترمز ای بی اس هم نباشه محکم هم ترمز نکنی زدی به اون حیوان ماشینت هم قور شده ای اونم مرده باید ترمز ای بی اس داشته باشی ماشینت باید ترمزش ترمز باشه بعدا باید محکم ترمز بگیری این کجاست این میشه یوسف نبی رفت بله در درو بست گناه گیر کرد چیکار کرد فرار کرد این دیگه نیست به این میگن ورع توی یه حرکت سنگین خودتو بکشی بیرون سخت ها شالا که مرد امتحان اینجور چیزا قرار نگیری اگه سربلند بیای بیرون که خوش به سعادتت اما اگه خدایی نکه گیر کنی بیچاره میشه اگه خدا نخواهید آخ ما, آخ ما رو تو این مرحله آزمایش قرار نده به ما همینجوری بده بره آقا کرم کن به ما که همینجوری قاتی بده بره یه نفر آدم که تو این ترون هست ماشاءالله زیاده هم دوله همه شما کرده هم دوله یه نفر اولیاء خدا که هست به خاطر اون یه دونه اولیه خدا به ما هم بده ما سراخ نداریم وجه الله که امام حسن باشه دربست بس تو آقا قاطیباتی میخره این فکر نکن اگه رفتی حرم مثلا اهل بیت اگه تو اون حرم تو اون لحظه حضرت نگاه میکنه میگه آقا امروز بهترین افراد زمین که از زیارت من که میگن آقا مثلا این بهترین افراد بود اون از زیارت شما به همه بنداده همین بدید کرم یعنی همین دیگه ما رو نزارتون من میترسم تجرید بشم رفوزه بشم الان داشتم میمدم یه بیت به ذهنم اومد همین تو راه گفتم این یه بیت رو ای کاش پرده پوشی تو روز محشرم ای کاش پرده پوشی تو روز محشرم باشد وگرنه پیش علی آب میشویم بله اون سری گفتم یه سری براتون گفتم که بلاخره محبت امیر با ما چی کارا می اینا رو گفتن خدا رحمت کنه حاجب علیه الرحمه یه قزلی گفت حاجب اگر محاسبه هش باری حاجب مصر دوم مصر دوبام چیه؟ هرچی بخواهی گناه کن شب اومد مولا تو خوابش حاجب اگر یعنی چی اگر یقین محاسبه هشت با است کی گفته اگر یقین قص علیان هب بهو جنه قصیم و نار ول جنه. یقین محاسبه هشت و علی اما شرم از روخ علی کنه, کنه کمتر گناه کن داداش ما گیر اعمال انجام داده شده نیستیم ما. ما گیر اوناییم که نباید انجام بدیم نگیره اونایی که باید انجام بدیم اونایی که باید انجام بدیم و معمولا انجام میدی دست و پا شکسته بالاخره گیر ما اونجاست که یه سری چیزا رو نباید انجام بدیم اون وقت چی میشه قلب سیاه میشه این قلب سیاه میشه حالا منو شما هم که محبه میره روایتشو روایتش رو گفتم بهتون. نمیخوام تکرار کنم. میاد زندگی دنیا سخت میگذره. قبر سخت میگذره. موقع جون دادن سخت میگذره. برزخ سخت میگذره. ولی قیامت شفاعت میکنن. اصلا جهنم میدونی برای چیه؟ یکی تعبیر میکرد جهنم عدبستان خداست. تو فکر نکن جهنمو گذاشتم بدانن تو سرت جهنم ادبستان خداست میارته تو جهنم خب مثل یه آهنی آهنو این شخصی که میخواد آینه درست کنه آهنو میذاره تو کوره حرارت میگیره داغ میشه میاره بیرون چکش میزنه بهش صافش میکنه انقدر میذاره تو آتیش میاره میه تو این صفحه صافی بشه بعد تازه بر شروع میکنه سیقه خب این آهن داره زجر میبینه ولی بعدش چی میشه؟ میشه آینه آقا بهشت محل اینه که قلب شما تجلی پیدا کنه به وجه الله که اونم ذات مقدس امیر الممنینه. شما باید بتونی علی رو ببینی بهشت مال دیدن علیه مگه هر کسی میتونه علی ببینه؟ یه کاری میکنن که بتونی علی ببینی یک دماری از کار در میارن صافت میکنن میفرستن یه حالا او بهشت حالا چرا تو قیامت دیگه عذاب نداری چونکه این گداه گرچه خرابه است به تو منتصب است دیگه تو قیامت اگه بیاد دست تو رو بگیره بگه این جهنمیه انگار به امیر المومنی به الله گفت این متصل به علیه دیگه جهنمی نمیشه اونجا همه میبینه اما چرا تو برزخ عذابه چون کسی نمیبینه هرکی اعمال خودش گیره اما قیامت همه میبینه اه این که علی علی گفت یه عمر این که شبه ها میمد حیعت ما میردیم عرق میخودیم کهیف میکن این را به حیعت به این هم که اومد مثل جهنم آ علی علی هم که میگفت این بود نداداشت قیامت دستتو میگیره اما شر مزروح علی کنه کمتر گناه کن ترک گناه ترک گناه با خودت رو ترک گناه شرط کن گناه رو بذاری کنار این چشم رو خدا به تو داده امام زمان ببینی آقا نزدیکه ها. شالله. شالله نزدیکه ها. رود میشه با این چشی که به هر محرم و نامحرمی نگاه کردی بری. زل بزنی تو چشای امامی که عالم الغیبه و شهاده است یه کاری بکن. وقتی نعوض بالله شیطان رو دنبالت ما دنبالت گفت رو بکن. اما میکنه دیگه اول بگو باشه من این گناه رو میکنم ولی تو یه کار بذار من انجام بدم منم حرف تو رو گوش میدم چهار کنم برگرد رو به کهرولا یه سلام به ما موسیقی بده بگوی آب عبدالله زور استیاده من زورم نمیرسه شیطان زور استیاد نیستو میگه کید شیطان ضعیفه. قرآن میفرماد کید شیطان ضعیفه اما بچه عقرب انقده؟ این بچه اقربی که تازه به دنیا میاد انقده؟ برو انگشتتو بذار رو دمش نکشش. همون بچه اقرب نیشت میزنه. اون یهو یک هواری میکشی. چرا بهش رو دادی؟ اصلاً رو دادی دیگه؟ بچه اقربو با هم انگشتت هم میتونی بکشی قبل اینکه نیشت بزنه. شیطانی همینه با انگشتت میتونی لهش کنی اما بهش روح دادی حالا که بهش روح دادی نیشت میزنه یکی دیگه اشیه وقتی و بلا گناه آمد دنبالت اینو باید بهش به بی یقین برسی ها. حالا من دارم به چجوری میگم تو اینجوری فکر کن اول اینشالا فکر کن تو این فکرت به یقین برسه که چی که الانی که من میخواهم این گناه رو انجام بدهم امام زمان حاضر اینجاست شک داری که امام زمان حاضره اگه شک داری برو رو امام شناسید کار کن هنوز امامتو نشناختی باید بره تو قلبت که الان اصلا تو ماشینی یو مثلا می نامحرمی میاد اوه با یه خیلی خیلی درو داغونی بعد یو فکر کنی صندلی بقلت امام زمان نشسته خدا وکیلی امام زمان باشه اصلا سرتو بالا میگیری اصلا فکر میکنی اون نامحرمه که من قربونت برم آقا اینا چیه از اینا. همه دنیا امام زمان رو حاضر ببین ناظر ببین در تمام لحظات و افعال و اقوال و افکارت اون موقع ببین چه میشه باید آماده بشید بچه برای مادن امام زمان امام زمان سین زن کشککی نمیخواد منبری که حرف بزنه نمیخواد روزخونی که روز این نک اقرمکم الله امام زمان اهل تقوا میخواد نمیاد بگه آیت الله فلانی مرجع تقلید بودی بیا این لشکر راست ما مال تو سردار فلانی هم این مال تو آقا مثلا فلانی هم که بالاخره یه تو چوام نه یوم یه بچه 16 ساله میگه بیا لشکر قرب من مثلا مال توه تقوا داره من سبا اینا مال ما تو دنیاست است همچین که بذارنه تو قبل نکی و مونکر نمیاد اونجا بگه سلام علیکم آیت الله فلانی من رب بک میدنه تو سرت من رب بک تعرف نداره باد اینا مال من توه وزیر و سفیر و رئیس جمهور و... این همه بازی دنیاست انت این نه دنیا لحبون و لحبون داره بازیت میده حالا هر که یه جور یکی رو با پوست یکی رو با منصب یکی رو با ریش یکی رو با امامه به خدا بازی میده یه وقتی نیایی هیئت تو هیئت اومدی ولی تو بازی برای بازی اومدی هیئت بعضی از این اختلافات تو این حیعت مشاهده میشه اینا میکنم میرن اونا میکنن میا از بیتقباییه بعد بعدم اونی چه میخواد بیاد بگه چرا نه ما این بعد میاد بگه امام حسین اینجوری گفت اون میاد میگه بعد از امام حسین هم خرج میکنه نمیاد بگه من اینجوری میگم شه یاد بگه امام حسین اینجوری گفت روایت داریم دلت نفست چنگ بزن به اربت الوصفا فرمود اربت الوصفا علی بن ابی طالبه چی گفت از راه چی گفت امیرالمومنین اینو مینداخت بیرون اونو می آورد اون میمد این میره اگه برای حسین ابن علی میای بیا فقط برای حسین بیا برو کف جف کن هرچی ادین هیات میری ادین منبر که تو این رفت قرار داره هرچی میریم بیرون تر ثواب بیشتره برای دستگاه ما حسین کف کنه بیشتر میبره اونی که جلو دروای میسه و والله بیشتر میبره دلشم تو حییت ها نوکری کن چیکار داری که چی میگه اگه اومدی بعد ده سال 20 سال نوکری سیمت وص نشده نوکری دیرات داره مثل نماز میمونه فرمود حضرت نماز مثل یه همومه تو خونه آدم آدم روزی پنج بار بره هموم بعد پنج بار هموم بیای ببین یارو گلیه خب معلومه که این رفته هموم آب بازی کرده دیگه هموم نرفته این نماز و حیعتی که تاییش هیچی نمیشی تو حیعت نبوده نماز نبوده رفتی آره به قول علی آقا بردش کردی پردی بالا پایی یه عرقی کردی بلاخره اینم میخرن به قول یکی از این رفقهای ما ما برای هم دیگه خلاصه کوکاوا با میکردیم اون میگفت نمیدونم می تو اینجوری ما میگفتیم اینجوریه خلاطش کوکا برای هموام میکردیم که خفتیم که آقا مثلا من گفتم آقا مثلا ظرفی ندارم که برم کربلا امام حسین چیدی توش بریده این ظرفی که دارم برش گردوندم اصلا ظرف ندارم نمیتونم اندازه چیدی بگیرم بیام یه تو قشنگه کوک اصلا من رو تو آبکش ها چیزی آبی توش نمیشه اما این آبکشو وقتی تو دریا میکنیم میاری ببین تمیز که میشه یا تمیزت میکنه ولی مرد باش تو که داریم میای ظرف بیار به خودت پر کن ببر مگه رسول تو ترک... که کجا رسول ترک شد امروز پیش آقا جای ارضی بودیم صحبت آرام شد آرام از کجا آرام شد اومد گریه که تو دستگاه موسی ولی تو گریه کردنش اونایی هم که ابی عبدالله گفت انجام داد بچه شهدای کربلا حسین دوست عامل بودن ما الان وقتی میخوام یه عارفی رو نام ببریم میگیم عالم عامل هم میدونه؟ هم عمل میکنه هم بچه کسایی که عالمن تعبیر تبیر شده به خری که داره با خودش کتاب مثلا. با کتاب حمل میکنه. چیز؟ عمل میکنه عمل نمیکنه به حرفاش امین الان هر کدوم از ما به همون بگم بیا درباره سلوک سلوکه صحبت کن تا مقام فنا بلدیم حرف بزنیم. ولی تو مقام یغزه عمل نکردیم. مقام فنا که سفر صدمه مقام صدمه حالا یا تو اسفاره عربه مقام چهار رومه یغزه که مقام اول به اندازه یغزه عمل نکردیم. چون اگر کسی یغزه رو بهش رسیده باشه من یه کوچولو راز به یغزه بگم کسی به یغزه رسیده باشه مقام شبود داره در کشف و مکاشف و دستی داره پفنو به مقام اولم نرشدی اتقه الله تقوی خدا رو گناه نکن مردی گناه نکن و احسن احسان احسان یعنی چی؟ آقا ما دو تا واجبه تو قرآن داریم، یکیش عدله، یکیش احسانه. پشت سره هم میاد. اول میخونم بعد حالا اول میگم چیه بعد آیاتشام براتون میخونم. عدل چی آقا؟ عدل یعنی هر چیز رو سر جای خودش بذاری. عدالت اینه که مثلا آی فلانی تو فلان شرکت واقعا نپارتی من مدن واقعا فهمید. عدالت اینه آیه فلانی تو فلان شرکت بشه رییس فلانی بشه معاون. این عدالته اون بیشتر دعامت کشیده، تا بیشتره، کارش بهتره. اثیم. زمان امام زمان هم همینه، عدالت میاد. فکر نکن فردا امام زمان میاد، همهمون پرشه کنی، ثبور میشیم، هممونم هم یه خونه ادار متری داریم، همهمون مثل همه، حتی اطاقا نمی دونم لباس و ادالت دیگه امام زمان میخواد بیاد هم این موقاتت داداش اصلا موقاتت عین بی ادالتیه. اون کسی که رفته 10 سال درس خوند زحمت کشته دود چرا خورده رفته دکتر شده و کسی کردم و رفته دنبال فوتبال الان مثلا رفته کارگری میکنه جفتشون اما 10 میلیون پول در بیان که همچی نرفی زده اما به شرط اینکه این, این دوتا در انجام به این دکتر رسیدن در یک مرحله باشن ها نه اینکه مثلا اونی که نتونسته بره ادالت این کارو نداشته شرایط برای همه فراهم باشه ولی اون نرفته باشه این رفته باشه اون وقت عدالت اینه که این ده تاممن در بیاره اون پوتا عدالت اینه هر چیزی رو سر خ... جای خودش قرار بده. بچه چرا میگه خدایا عدالتت با, با من برخورد نکن یا؟ اگه با عدالتت برخورد کن من جهنمی هم. خودم که میدونم که. حالا سر مردم کلا میذارم بالا منبر. خودم که میدونم دستم چی نیست. اما احسان. احسان و کچولو بدم چقدر وقت دارم پندگه دقیقه کنم. احسان آقا احسان یعنی یک قدم پا رو از ادالت فراتر گذاشتن یعنی بیشتر از اون چیزی که حقش بهش بدی چرا میگه به الوالدینه احسان به پدر مادر احسان کن یعنی بیشتر از اون چیزی که حقشون باید بهشون بدی نه اینکه بگی نه تو حق تدار. نه باید بیشتر بری بالاتر اگه هزار تومان حق بشه بعد ده هزار تومن بشه بدی احسان کن با پدر مادرت ولی نعمت ها. خدا هر جا حرف تویید میزنه بعدش میگه پدر مادر اون بقول ربه ورهم همه به پیغمبر میگه, میگه اینجوری دعا کن بگو ورهم همه خدا بهشون رحم کن کما رب بیانی سقی من بچه بودم گردن رو نمیتونستم این پدر و مادر اونایی که دوستانم پولدار بشن دوستان پولدار بشن اموال دنیا خیلی داشته باشن یه راه کار بهتون بدم پای مادر و هر کی ببوسه پولدار میشه اثر وزیشه. یکی از اثرات بوسیدن پای مادر همینه بچه دست و پای پدر مادرتون رو ببوسید قبل از اون که دیگه دیر بشه این رو جدی میگم چون اون موقع دعا میکنی کاش برگرده بوسه بزنی به دستاش خجالت نکش برو جلو تو جامعه کبیره میخونی عادت و کمول احسان اصلا هیچ وقت به اندازه خودت بد نمیدن همیشه بیشتر میدن احسان یعنی همین حقت این نیست که بیایهی حیعت. منا حقیقت نیست برای حسین ابن علی گریه کنی ولی بیا احسان میکنه. بعدن فکر نکن همینجوری میانی گریه که اینجا میکنی همینجوری. گریه بر روزه ی سراسر نور است. عشق فیلیت که از سوی سما هدیه کنن. حالای شال محرم باشه راجع به اشک صحبت کنه. من به شما بگم مثلا عشق یعنی چی؟ تا بگم به واسطه گریه کردن برای امام حسین شما در چه رتبه ای قرار میگیری یه چیزایی بهت بگم که اصلا گوشات سرخ بشه از عظمت گریه برای حسین ابن علی احسان کن اینالله یه بل بالعدل والاحسان احسان میگه اول ادالتو انجام بده بعد بیا سراغه احسان دکتر روایتم راجع به احسان بهتون بگم آیه آیه بخونم که میفرماود که من جا ابل حسنه فلهو اشرو امصاله یا امصاله ها این حسنه است که ده برابرش رو میده خلاصه کلام تو جمله اول اتقلا و احس اگر حمام میفهمید که نفهمید که منم نفهمیدم فهمیدم شما هم بسم نفهمیدید اتقلا و احسن کل راه عبودیت بود این همام نفهمید که فرمو کرد که آقا بیشتر بگو ماه نزدیک یکی دو جمله راجب به ماه بگم چون دیگه هفته بعد که یک شنبه میشه ایشالا ماه رمزونه بچه بهترین موقعیت برای ترک گناه ماه اما به یه چیزای توجه دوست. اگه تو محرمه گناه کردی و میله به گناه داشتی به شیطان فوش نده. واسه دست و پاش تو زنجیره. پس این گناهت گناه نفسه و به سو الا رحم این شیطون بدبخت نن مرده که الان اینجوری گرفتار شده، خودش گرفتار اون نفس امارش بود که تکبر کرد. خودش گرفت این نفس ادا ادا وک الذی لذی بین جنبک نگفت امیرال دشمن دشمنه دشمنه تو شیطون ابلیسه گفت خودتی این نفس امارته تو ماه زون دقت کن جایی که گناه اومد دیگه شیطون نیست مثل اون دوزی که از دیوار رفت بالا خورد زمین گفت ای بر پدر و مادر شیطون لعنت شیطون من به پدر مادر خود لعنت این کاری که تو داری میکنی منم بلد نیستم بعد ایجا شیطونم رای نداره نفسه تو ماه بهترین موقعیت ترک گناه است. گناهی که معمولا دامنگیر ما هاست. دامنگیر جوان رفقا یک چشمه از این نامه رم کن بلش. یکی این زبونه آقا فوش نده فوش نده به اسنا اصناعشری فوش نده به غیر شیعه اصناعشری بهتر فوش ندیم به دشمنان هم فوش بده فوش بده ها ایرادی نداره امام صادق فرمون با بچه یاد میریم امر میکنیم دشمنانمون رو ثب کنن فوش بده البته این بعضی از اینها که ملعون ها من خیلی گشتم انو اصلا فوش ها را آقا گشتم ببینم که شامل حال این بعد یا نشه دیدم نه خدا وکیلی همه شامل حالشه یه فوش نیست که صداست دیگه رو جمع کنیم اتقل بحث ما رمزون با خودت و خدا با امام زمان عهد کن رفیق با امام زمان عهد کن بگو یا بقیه الله من میخوام ترک گناه کنم اما به جان خودت قسم زورم نمیرسه دور دادم به این شیطون یه رو گرفته بحث من جمع شه ایشالله یه سلام بدیم خدمت ما آموزه ایشالله که فیض میبریم محضر بزرگ درها السلام علیکم يا آبا عبدالله، و آل الأرباع التي هلات بسنای، عليكم اني سلام الله بدار. ما بگی تو و بگی آلله جاله الله السلام علی الحسن و علی ابن الحسن و علی اولاد الحسن دل جناه دگر تا به استقامت داشت نه سودا و شهده بر جدال چویی رگون کردی، عزیز فاطم از, از بسر نگون کردی، بلال مرتب ش. اگر, اگر غلط نکنم نمتنم. عرش بر زمین افتاد تکیه به نیزه قریب زد و بکنه با یه نامردی, نامردی سنگی, سنگی پرتاب کرد پیشانی ابی عبدالله, عبدالله, عبدالله, عبدالله, عبدالله یه نکته بگم کربلا راست اصلا سنگ نداره این سنگ ها رو با خودشون آورده بودن. بودن همه سنگای چیز تیز بود پیراهن عربی رو بالا زد پیشانی رو پاک خدا لعنتت کنه عرمله تیر سفم رو به قلب عرباب منوش و حسین بی تی زد ایس دات سلام الله علیه